امداد شما نیکو فرخنده، پگاهتون خجسته باشه ان شاءالله. عید شما مبارک. خیلی خرسندیم که شما عزیزان بیننده با نهایت بزرگواری همراهی می‌فرمایید برنامه نسیم شرقی رو و همطور که خدمت شما عرضه داشتم، مهمان عزیز و عالم و دانشمندمون استاد محترم جناب آقای زیایی، مدرس طب سنتی و علوم اسلامی و سنتی هم تشریف بردن در سیدوی نسیم شرقی خدمتشون هستیم با افتخار نکتهی رو که استعداد دارم سمیمانه از محضر شما بینندگان محترم حالا اونهایی که اطلاعاتی دارن اطلاعی دارن خواهش میکنیم بدر به منزل ایشان بیت ایشان مراجعه نفرمایید و طرح سآلی اگر دارید با همون سامانه 3625 مطرح بفرمایید ایشون هیچگونه مطبی برای حال ویزیت بیمار ها ندارن صرفاً خواست درمانی گیاهان دارویی رو در این برنامه ارائه میدن و کار ایشان تدریس هست و خب ما هم خوشحالیم که از سفره علم و دانشه ایشون در این برنامه بهرمند میشیم ارزاده با احترام دارم جناب آج آقای زیایی عزیز تبریک میگم سمیمان سمیم. پیشگاه شما و همه سادات محترم علماء روحانیون مبمه سلام علیکم و رحمت الله بر شما و همه بزرگواران و ملت شریف سال نورو بر همه انشاءالله مبارک باشه همه در سایه محبت خدای رعوف و دعای خیر مولا صاحب زمان باشن همچنین دهی دوم شهادت حضرت فاطمه زهر رو هم گرامی می داریم به احیاء شاعر فاطمی می کنیم سلام مترکی خوب اگر شما هم اجازه می‌فرمایید، چون تدبیر تهیه کننده محترم برنامه حجت الاسلام و المستمین جناباجه های کازی میانپور در این منوال بوده که این هفته محوریت و موضوع گفتگون رو ایدانه داشته باشیم و انشاءالله هفته ای آینده استاد عزیز و عرجمن جناباجه های زیایی به ما قول دادن رو به ما بدن تشریف بیارن و ادامه پرسش های پزشکی رو هفته آینده انشالله خدمت شما باشه. اما میخوایم در واقع روحیه این صحبت و گفتگو رو بهاری بکنیم و از معظر استاد خواهش بکنیم در ابتدا با روایتی حکایتی در حال این صحبت رو زینت ببخشند و از ماساالات ایدانه،, ایدانه رو خدمت شما مطر در روایات شیعه برای چند تا از معصومین به نوع سلام به بهار آمده از جمله سلام به محضر مبارک مولا صاحب الزمان السلام و یا بقیت الله السلام و یا بقیت الله فی ارض السلام علیکم یا ربیع الانام که باار دلها هست، امید واقعی به آینده بهتر و پیشرفت گستردهتر در همه شاخ هایعللو بسیار اوعمل. بله. من خواهش می کنمم از خاطرات بهار و نوروز اگر صلاح میدانید بله برای ما بفرماییدله.نا روز حاج یعنی بازگشت به خوبی ها یعنی از خزان و سردی به بهار رسیدن. مثلا فرض کنید اخلاق بد رفتار منفی اینا نه تنها دعیت و زدیت میاره و افراد رو متفقق میکنه بلکه سبب دلسردی افراد به یک دیگر میشه حال اگر جایگزینش خوش اخلاقی و رفتارهای مثبت کنه مردت و رحمت بیشتر میشه و جاتر میشه یعنی صمیمیت و مهربانی پس بهار صمیمیت بهار مهربانی مثلا اگر الفاظ رکیک و مانند دو اونها مثلا اگر شخصی عادت داشته در از این عادت زشتش برداره همچون رسول الله رحمتا للعالمین نعم خوب باشه خوش زبان باشه اگر مثلا شخصی ترک صله ارهام کرده یا آقه والدین شده این دنیا و آخرتش خزان شده و خشک شده او رو تبدیل به بهار کنه با سله ارحام انجام دادن با احسان به والدین نمودن اگر کسی رحم و عطوفت ندارد و یا سنگ دلی و قصاوت قلب دارد این رو ترک کنه و کمککار و حامی و رسیدگی همه جانبه به ایتان و فقرا به مساکین کنه. چه در همسایگانش، چه در فامیلهاش، چه در همکاراش به اندازه که توان و قدرت دارد. چون قدرت شرط تکلیفه. ولا لا يکلف الله نفسا الا وسعها خواستن بگن نسبت به قوت لایموت فقرار و مساکین بی تفاوت نباشه این حالت خزان امر مفیده یعنی تبدیل کنه به بهار یعنی همتش بر رسیدگی همه جانبه به نوع صحیح بر این اقشار کم درآمد و یا ضعیف باشه و بر بزرگوارای دیگه مثلاً اگر نسبت به اقشار آسیب یا زنان بی سرپرست خانوار بی تفاوت بوده این خزان عمرشه و آینده این اینو تبدیل به بهار کنه همچون ابی عبدالله الحسین حسین الدعی علیه السلام که تو را و داریم درود در شما امام حسینی که بهار دل پیر زنها هستی پس معلوم میشه امام حسین علیه صلاة و السلام کاملا رسیدگی میکردن به افرادی که از کار افتاده یا زنان بی سرپرست خانوار کاملا رسیدگی میکردن چون انسان اجتماعی خلق شده و در اجتماع خوب و سالم رشد مفید دارد، اما بی تفاوتی و بی غیرتی و بی و ولنگاری و عدم عمل کردن و اصول ارزشی سبب زایع شدن خود و زایع نمودن اجتماعات بزرگتر می شود خیلی متشکرم سلامت بشه البته باستان در بخش دیگری خدمت شما هستی ازید میخوایم که خیلی کوتاه دوستانم بخشی را آماده کردن ببینیم و مجددا در منظر استاد خواهیم بود عید شما مبارک باشه خدمت شما عرض کردیم که امروز روی کرد و سمت و سوی گفتگوی ما با استاد محترم مهمان عزیزمون جناب حاج آقای زیایی قدری متفاوت هست اینشالله از هفته آتی که ایشان وعده دادن محبت کردن که تشریف میانن دوباره پرسش های پزشکی شما رو پیرامون خوایط و خواهیس گیاهان درمانی و داروی مطرح خواهیم کرد اما باز هم ما به هر طرف که نگاه بکنیم بالاخره یک وجه اون برمیگرده به نوع تغذیه و سلامت وقتی منظر شما هستیم دیستانیم خیلی استفاده برو کنیم این درسته که میگن در فصول مختلف با توجه به آب و هوا اون شرایط فیزیکی و بدنی آدم هم متفاوت میشه و پذیرش مثلا نوعی از اغذیه اکلمه و اشربه هم متفاوت هست بله. اینی که ما در فصل بهار و نوروز معمولا باید چه نوع داشته باشیم. حالا من این سالو خیلی کلی مطرح کردم که حضرت علی بله. پاسخ بفرمایید. امام رضایی رءوف علیه الصلاة و السلام علیه الصلاة و السلام در رساله‌ی ذهبیه تبر رضا خاص برای هر فصل اصال رو بیان فرمودم غذاهای ترش و تند و تیز در فصل بهار مناسب نیست و برای همیشه سخ کردنی، تفتادنی بودادنی مفید نیست زرراش بیشتر از نفعشه مثلا سرخ كردنییا تفتادنییا بو در مردان تورم پرستات می آورد و در زنان نوردی های دهان رحم می آورد و حتی بعضی از اقسام التهاب چشمی می آورد مثل سوزش چشم یا خارش چشم حال اگر توان با بدخوری هم باشد مثلا پوست بادام زمینی خرزهای میوه کیوی پوست هلو اینها حتی آسم و تنگی نفس هم می آورد. اگر اینها به اضافه زیادرهی در مصرف شکلات نارنگی باشه تورم لوزه هم می آورد. یعنی بجای اینکه در بهار بهاری زندگی کنن به خاطر بدخوریشون و یا پرخوریشون دستگاه گوارش و بقیه اعضاشون به زحمت میندازن خودشونو دچار بیماری میکنن پس نقل فرمودید از فرمایشات حضرت زهرا علیه السلام در رساله ذهبیه در ایام بهاری غذاهای ترش و تند و تیز کمتر مثلا بله بله و چه نوع غذاهای بیشتر مفید هست در این غذاهایی که مناسب باشه با طبع لطیف بهار مثلا بهترین صبحانهشون یک لیوان شیر عسل بهترین نوشیدنی تقویتی ایشان یک لیوان آب سیب تازه با عسل گوشتای لطیف مثلا استفاده کنه مثلا اگر بچه شون هم کم وزنه نحیف و لاغره هم تو فصل بهاره از گوشت بلدرچین استفاده کنه مثلا اگر دخترشون یا عروسشون حامله است به ماه یا تازه زایمان کرده گوشت بوقلمون براشون بسیار مفیده که آب گوشتش یا فسنجونش یا سوپش درست کنند در بعضی مناطقه اصلا رسمه این رسم خوب دارم از منطقه تقریبا تربت جام طلب مرز صالح آباد این رسم دارن رسم خوبیه پس بیشتر مواظب به خود بودن چی بخورن چی نخورن یکی از چیزایی که جامعه رو مبتلا کرده و این دستیسه خارجی بوده در این هفتات سال اخیر مصرف بیردیه اوسانس های شیمیایی قند های شیمیایی چربی های با ترانس بالا و کافئین زیاد و استفاده از پلاستیک های گناگون که نوشیدنی ها و خوراکی‌های های که این ظروف مصرف میکنن اینا همه عوارض سوء متعدد داره به جای قند های شیمیایی از قند و شکرش اینجا تقنادیام حالا یک کم خورد ایب نداره همون که عادتشون این باشه زیاد هم بخورن بیماریهای گوناگون میگیرن چاش طبیعی بخورن مثل عسل مثل خورما مثل انجیر مثل انار مثل توت مثل قیصی مثل برگ زردالو طبیعی مصرف مثل. مثل مویز که کشمش انگور به جای شربت های شیمیایی اسانس‌های های شیمیایی نوشابه‌های های مختلف و مارک های مختلف و داخل خارج کشور به جای آب های شیمیایی شربت طبیعی بخورن مثلا اگر شخصی هم افسردگی دارد و ترابط و شادابی طبیعی نداره خب شربت زعفران عسل بخوره ماشالله بهترینش تو کشور خودونه شا نوع که قاشق چای خوری یعنی مناطقی که خشکی یا نیم خشک که نیم گرم مناطقی که مرتوببی و شجی تا یک گرم در 24 ساعت. این یعنی میریم تو یه لیوان آب با اصل شیرین میکنن حالا بستگی داره به فرد اصلا اعصابم ضعیفه با اصل آبیششن. معدهروده استرسی دارم با اصل نعنا نحتی پوستی دارم با اصل گرم، تجمع مایات اضافی بافتیم یا کیست؟ یا تومارهای خوشخیم دارم با اصل گل استخدوست این چند منظوره عمل میشه هم شادابی و ترابط طبیعی و هم به شما اصلا رسیدگی به دقیه مسائل از بیماری هم یا مثلا هم فرض کنیم هم اعصاب ضعیفه هم قلب ضعیفه. خب عرق بیدمشک به اضافه گلاب طبیعی به اضافه اصلا این مخلوط رو بخوره هم مقوی قلب هم مقوی عصا بعضی دکتران ها جگاه شوخته هست یکی از دکتران ها جگاه گرفته بود گفت اگر من مثلا این خوب بشه مریض مثلا کهو یا کرفس من تابلو رو میکشم پایین حالا نیست شوخته هسته ما هم اول سال شوخی کنیم رازه میز تابلوته بکشی پایین تبلت پایین کشیده است <تصفيق> این هم دیگه چون <تصفيق> اول سال تفریات سالمی شفیه کردیم یه بار دیگه حاج مثلا اصلاً اصلاً, اصلاً, اصلا اصلا زعفران هست تا همین به شما اصلا خراسان جنوبی ما منطقه خراسان رزوی دیگه شمالی رزوی جنوبی خب زعفران اصلا اصلا زعفرانیه زعفرانی هست خودشون بگیرم بخواه. بله زعفران دارچین کاهو زنیان و برگ سنا خانم هایی که حامل هستند نخورن بهتره اگر نمیتونن نخورن لاقل روی نکنن زیره که سقط جنین میآورد خیلی سپاسگزارم انشاءالله هفته آتی با طرح سوالاتی که شما عزیزان ارسال کردید در محضر استاد خواهیم بود یک دکتر و من خدمت بینندگان متفاوتمون بگم و عرض بنده به اساتید و عطبا عزیز و عزمند علوم پزشکی است خوشبختان جامعه ما، شهر ما، استان ما و کشور ما دارای پزشکا و عطبان بسیار زیادی است که از مشاهیر و مفاخر علوم پزشکی حتی دنیا می باشند. و ممتازترین کرسی های پزشکی دانشگاه های معتبر چه کشورمون بچه چه دنیا رو از آن خودشون کردن فرمایشات استاد عزیز و عجمند و گرانسنگمون جناب آج آقای زیایی مداخله در امور تبابت و پزشکی اتباع محترم نیست با احترام به منزلت و جایگاه فاخر پزشکان عزیز و گرامیمون صرفا در این گفتگوی سامیمان و دوستانه خواست گیاهان دارویی مطرح میشه حتی آجا ما توی کنفرانسی که تو دانشگاه فردوسی مشهد بود آجا گفتیم گفتیم این دکترای محترم ما چه در طب سنتی، چه در طب جدید، چه در طب اسلامی آجا کتابای مرجع رو خودشون بشینن داره هم دیگه بنمیسن چرا کتاب های مرژه های مختلف پزشکی ترجمه از قرب و شرق باشه اونا به با عنوان تحقیق و پژوهش باشه به تو همین جزوه طب اسلامی هم این نکته رو کجزد کردن من. چون این دکترای های متخصص عزیز ما اینور اینور دنیا هستن هجا. و نظرات همین ها رو های بر میدنن خارجی ها به اسم خودشون چاب میکنن به تیراج ملیونی من, من میگم همین دکترای های ایرانی خودشون در موضوع, موضوع. خودشون دور همدیگه بشینن کتاب مرجع رشته خودشونه بنون. نه اینکه کتاب های مرجع ما ترجمه قرب و شرق باشه. بله. گای قرب و شرق بودن بده ما تکدی در اسلام نداریم ولی تحقیق و پنجوهش خوبه. خیلی متشکرم. بس. سالیا خوبی براتون نارزی میکنم آمد. محتاج دعای خیر شما هستیم شال هفته آینده پنجشنبه هم با افتخار. در خدمت مهمان عزیزمون استاد محترم و عجمان جناب آجاقای خواهیم بود در وقت بخش و بعدی برنامه